روی مائده یا دو است ای اهل ایمان به قرار دادهایتان وفادار باشید بدانید که گوشت حیوانات چهارپا بر شما حلال شده است مگر آنهایی که بعد از این گفته می شود و شکار در حال احرام در حج حجرا حلال مپن دارید قطعاً خداوند به آن که صلاح بدامد حکم می‌کند ای کسانی که ایمان آورده اید حرمت شعائر و مراسم الهی را نشکنید و همچنین حرمت ماه حرام و قربانگاه بی و بینشاون و نشاندار را و نیز حرمت آنها که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل و خشنودی او میآیند نگاه دارید اما هنگامی که مراسم تمام شد و از احرام درآمدید شکار کردن برای شما مانعی ندارد مراقب باشید که چینه و دشمنی نسبت به کسانی که قبلا شما را از حج و مسجد الحرام باز داشتند باعث نشود که تعدی و تجاوز کنید و باید در انجام کارهای نیک و شاگسته و رشد و توسعه پریزکاری همکاری کنید و هرگز بر انجام گناه و تجاوز متحد نشوید و حرمت فرمان خدا را نگاه دارید زیرا مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست بر شما حرام شد گوشت مردار و خون و گوشت خوج و آنچه به نام غیر خدا زیب شده است همچنین حیواناتی که خفه شدند و یا آن دسته که با زجر کشته شده و یا از بالای بلندی پرت شدند و نیز بر شما حرام است حیوانی که به ضرب شاخ حیوان دیگری هلاک شده و یا گوشت حیوانی که باقی منده حیوانات درنده است مگر آنکه هنوز نمرده باشد و به موقع برسید و آن را زیب کنید و باز بر شما حرام است آنچه به نیت بوتان زیب شده همچنین آن گوشتی که به واسطه گره چوبهای قمار تقسیم می شود که این کاری زشت و ناپسند است امروز کفار ناسپاس، از دین شما معیوس شدند از آنها نترسید بلکه از من پروا داشته باشید امروز دین را به سرحد کمار رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد و برای کسی که مجبور و ناچاره است بدون آن که تمایل به گناه داشته باشد می از آن گوشت های ممنوع بخورند و باکی نیست و خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است باز از تو میپرسند چه چیزهای دیگری برای آنها حلال است بگو هر چیز پاکیزهی برای شما حلال است حتی سیدی را که پرندگان شکاری و سگان شکاری که با آنها شکار کردن را آموخته اید آنچنان که خدا به شما آموخته است، حلال و پاکیزه است. از گوشت سیدی که آنها به دست می بخورید و نام خدا را بر آن بخوانید و حرمت فرمان خداوند را نگاه دارید و بدانید که خداوند همه حساب ها را سریعا رسیدگی می کند امروز همه چیزهای پاکیزه را بر شما حلال کردند. غذای اهل کتاب بر شما حلال است و غذای شما نیز بر آنها حلال است. هم زنان پاک دامن اهل ایمان و هم زنان پاک دامن اهل کتاب های آسمانی قبل از شما در صورتی که مهر آنها را پرداخت نمایید حلال هستند. نه از روی زنا و نه به صورت دوستگیری مخفیانه و بدانید کسی که کفر به حکم خدا را به ایمان بران ترجیح دهد اعمال خیش را تباه کرده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود ای اهل ایمان هرگاه خواستید به نماز بریستید صورت و دستهای خود را تا آرنج بشویید و سرهایتان را محس کنید و پاهایتان را تا غوزه و چنان که جنوب باشید خود را پاکیزه کنید و اگر بیمار یا مسافر هستید و یا یکی از شما از قضای حاجت آمده است و یا اینکه آمیزش جنسی با همسران خود داشته اید و آبی نیافتید پس بر خاک تمیزی تیمم کنید و با آن صورت و دستهایتان را محس کنید. بدانید خداوند نمی شما را به سختی بیاندازد بلکه می‌خواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمتش را بر شما به تمامی عرضه کند. امید آنکه به مقام شاکران نائل شد. و به یاد آورید نعمت خداوند را که به شما عطا کرده است و نیز بیاد آورید پیمانی را که با تعیید از شما گرفت آن زمان که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم پس حرمت اوامر خدا را نگاه دارید زیرا خداوند بر نیت و اسرار درون سینه‌ها آگاه است ای اهل ایمان همواره کارهای خود را برای خدا به و به عدالت گواهیده دهید و مراقب باشید کینه و خصومت نسبت به دشمنان باعث نشود که تعدی و تجاوز کنید و به ناحق روی آورید عادل باشید که این خصلت به پرهیزگاری نزدیکتر است و حرمت خدا را نگه دارید زیرا خداوند بزرگ به عمل آگاه است خداوند به اهل ایمان و آنان که عمل سراسر خوبی و خدمت است، وعده آمرزش و پاداشی بزرگ داده است و آنان که راه انکار و تکذیب آیات ما را پیش گرفتند اهل جهنم هست. ای اهل ایمان از نعمتی که خداوند به شما عطا کرده یاد کنید آن هنگام که جماعتی قصد تسلط و دست درازی به شما را داشتند اما خداوند دستشان را کوتاه کرد پس حرمت خداوند را نگه دارید و بدانید اهل ایمان فقط به خداوند بزرگ توکل می کنند وقتی خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت از میانشان دوازده سرپرست از توایف مختلف انتخاب کردیم. آنگاه خدا گفت اگر نماز به و زکات انوالتان را بدهید و پیامبران مرا باور کنید و یاورشان باشید و همچنین اگر به جان و مالتان در راه خداوند برزالحسن دهید من همواره با شما خواهم بود و گناهان شما را می پوشانم و شما را به بهشت هایی که نهرها در جاری وارد می کنم اما اگر کسی بعد از این راه انکار و ناسپاسی پیشه کند بدون شک راه نجات را گم کرده است و به خاطر پیمان چکنیشان آنها را نفرین کردیم و قلبهایشان را سخت و سنگین نمودیم زیرا آنها کلمات خداوند را از معنای حقیدویش خالی می کردند و آنچرا که به آنها گوش زد شده بود به فراموشی می سپردند و تو ای پیامبر همواره از کارهای خائنامه آنها آگاه می بهجز بجز اندکی که اهل خیانت نیستند پس از آنها در گذر و بزرگوارانه چشم پوشی کن زیرا خداوند انسانهای بزرگ منش را دوست دارد ما از کسانی که ادعای مسیحیت داشتند پیمان گرفتیم اما آنان بخشی از آن کرا که به آنها گفته شده بود فراموش کردند ما هم آنها را تا روز قیامت در کینه و دشمنی رها کردیم و به زودی خداوند بزرگ آنان را از عمل آگاه خواهد کرد ای اهل کتاب پیامبر ما به سوی شما آمده تا بسیاری از حقایق آسمانی را که شما کرده اید روشن سازد و از بسیاری دیگر کتاب تعمیر را ندارید درگذرد کاش درک می کردید که از جانب خدا برایتان یک نور عقیلی و یک کتاب روشن آمده است خدا توسط آن هر که را خالصانه برای جلب رضایتش ادام کند به راههای صلح و آرامش و دوستی هدایت می کند و از تاریکی های جهل و بیداد راهی و به فرمانش به نور حقیقت رهنمون می و بدون تردید به راه درست و نجات بخش هدایتشان می واقعاً واقعا کفر ورزیدند آنها که ادعا کردند خداوند همان مسیح پسر مریم است. بگو ای پیامبر چه کسی قدرت ارزندام در برابر خدا را دارد؟ اگر خدا بخواهد هم مسیح و هم مادرش به همه اهل زمین را حلاک می کند زیرا حکومت زمین و آسمانها و آنچه بین آنهاست متعلق به خداست هر چه بخواهد قاعد می کند بدان که خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست و یهودیان و مسیحیان ادعا کردند که ما فرزندان و دوستان خاص خدایی با آنها بگو اگر چنین است پس چرا خداوند شما را به سبب گناهانتان عذاب می کند این چنین نیست شما هم بشرید مثل دیگران که خلق کرده است. بدانید خداوند هر که را سلاح بداند میآمرزد و هر که را سلاح بداند عذاب می کند. زیرا حکومت آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست از آن خداست بدانید که عاقبت و سرنوشت همه به او ختم می شود ای اهل کتاب پیامبر ما در دورانی که پیامبرانی نبودند به سوگ شما آمد تا حجت را بر شما تمام کند تا دیگر نگویید ما هیچ بشارت دهنده و هشدار دهندهی نداشتیم. اکنون این پیامبر هم به عنوان بشارت دهنده و هم مشدار دهنده از آن شماست و خداوند بزرگ بر همه چیز تواناست و یاد آورید هنگامی که موسی به قوم خود گفت ای مردم به یاد آورید نعمتی را که خداوند به شما عطا کرد آن زمان که پیامبران نجات بخش از میان شما برگزید و قدرت و فرماندوایی اطایتان کرد و نعمتهایی تقدیمتان نمود که به هیچ کس از جهانیان نداده بود ای قوم به سرزمین مقدسی که خداوند برایتان تقدیر کرده است وارد شوید و به عقب نگردید زیرا بازگشت به کفر و نافرمانی باعث زیانتان خواهد بود اما به موسی جواب دادند در آن شهر قومی قدرتمند و ستمگر وجود دارد و ما تا وقتی آنها در شهر هستند هرگز به آن وارد نخواهیم شد اگر آنها از آنجا بروند ما داخل می شویم. اما دو نفر از میان آن ترسوها که خدا به آنها عقل و ایمان و شجاعت عطا کرده بود گفتند شما از دروازه شهر بر آنان وارد شوید هنگامی که وارد شدید خواهید دید که شهر را فاتحانه تسخیر کردید و اگر به قدرت خدا ایمان دارید پس به او توکل کنید گفتند ای موسا ما تا زمانی که آنها در شهر هستند هرگز به آن وارد نمی شدید. تو و خدایت بروید و با آنها بجنگی. ما همینجا نشسته ایم موسا گفت پروردگارا می بینی که من فقط اختیار خودم و برادرم را دارم از تو میخواهم که بین ما و این قوم زشت کردار بدلیت جدایی افکنیم و خدا گفت حال که چنین است چهل سال ورود آنان به شهر حرام شد آنها باید حیران و سرگردان در بیابانها بگردند و هیچگاه برای قوم بدکردار تأصف مخورد و برای آنان داستان راستین دو فرزند آدم را بخوان، آن زمان که برای تقرب به خدا قربانی کردند اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری رد شد و آن که مردود شده بود گفت بدون تردید تو را خواهم کشت و آن که پذیرفته شده بود گفت این قانون خداست که فقط از پرهیزگاران بپذیرد و اگر تو به کشتن من اقدام کنی مطمئن باش که من برای قتل تو اقدام نخواهم کرد زیرا از پروردگار جهانیان می ترسم و با این کار باعث می تو با کولباری از گناه من و خودت به سوی خدا رهسپار شوی و بیشک از اهل جهنمی و این جزای ستمکاران است. نفس سرکشش او را به کشتن برادر ترغیب کرد و آقبت او را کشت و سرانجام از زیانکاران شد در این هنگام خداوند به کلاقی که زمین را می فرمان داد تا به اونشان نشان داد چگونه جسد برادرش را دفر کند به قاتل گفت وای بر من که اندازه این کلاق هم نیستم تا بفهمم چگونه جسد برادرم را دفر کنم و سرانجام نیز پشیمان شد از این رو بر بنی اسرائیل مقرر کردیم هر کس انسانی را بکشد در حالی که نه قتل کرده و نه محکوم به فساد در زمین است مثل این است که همه مردم را گشته باشد و کسی که انسانی را حیات بخشد مانند این است که تمامی مردم را حیات و زندگی بخشیده است حقیقتن پیامبران ما برای بنی اسرائیل دلایل روشنی آوردند. اما بسیاری از آنها با وجود این دلایل راه اصراف و تجاوز پیشه کردند. جزای آنها که با خدا و پیامبرش جنگ می کنند و گستاخانه در روی زمین فساد و تباهی به راه میاندازند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته گردند و یا دست و پایشان به جهت خلاف یکدیگر شود و یا اینکه تبعید کردند زیرا برای آنان در دنیا خاری و ذلت و در آخرت نیز عذاب بزرگی برایشان مهیا است مگر کسانی که قبل از که شما بر آنها دست یابی توبه کنند پس بدانید که خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است ای کسانی که به حقایق ایمان دارید حرمت عوامر خدا را نگاه دارید و از فرصتها استفاده کنید و به خدا نزدیک شوید و در راه او جهاد کنید امید آنکه رستگار شوید آنان که راه کفر و ناسپاسی را پیشه خود کردند اگر همه آنچه در زمین و همانند است متعلق به با آنها باشد و بخواهند با آن خود را از عذاب روز قیامت باز خرند از آنها پذیرفته نخواهد شد و عذاب دردناکی برایشان مهیه است <تصفح> <تصفح> <تصفح> تلاش میکنند تا از آتش عذاب خارج شوند. اما هرگز نمی توانند از آن خارج گردند زیرا عذابشان پابرجاست و به عنوان یک مجازات الهی دست و مرد زن دوز را به کیفر کاری که کردند کنید و بدانید که خداوند مقتدر و حکیم است. و هر کس بعد از ستمی که کرده است توبه کند و با خدمت و کار مفید جبران نماید بداند که خداوند توبه اش را میپذیرد زیرا خداوند بسیار آمرزنده و با است آیا نمی دانی که حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست هر را صلاح بداند عذاب می کند و هر کرا سلاح بداند می آمرزد و او بر هر کاری تواناست ای پیامبر، آنان که در مسیر کفر و انکار مشتاقانه در شتابند تو را اندوگی نکنند چه آنهایی که به زبان گفتند ایمان آورده ایم در حالی که در قلبهایشان ایمانی نیست و چه آن دسته از یهودیانی که با دقت حرفای تو را گوش می کنند تا برای تکذیب تو بیابند بدان آنها جاسوسان گروهی هستند که خودشان نزد تو نیامدند آنها سخنان را از معنای اصلیش خالی می کنند و به یکدیگر دیگر می اگر آنچه را که خواستیم به شما دادند بپذیرید و اگر ندادند از او دوری کنید. بدانه پیامبر، اگر خداوند بخواهد کسی را به کیفر عمل مجازات کند تو قادر به کمترین دفاع از او نخواهی بود. آنها کسانی هستند که خداوند نمیخواهد وجودشان را پاکیزه گرداند. بدون تردید در دنیا خاری و مزلت و در آخرت نیز عذابی بزرگ نصیبشان خواهد شد آنها برای تکذیب کردن تو با دقت و حرفایت گوش می‌دهند. آنها مال حرام به وفور میخورند پس اگر به تو آمدند در میان آنان قضاوت کن و یا آنها را به خودشان واگذار بدان که اگر آنها را به خود راها کنی هیچ آسیبی به تو نمیتوانند برساند و اگر هم بین آنها بضاوت کردی با عدالت و انصاف حکم کن زیرا خداوند عادلان را دوست دارد و چگونه تو را به قضاوت فرا میخوانند در حالی که تورات در دستشان است و در آن حکم خداست و نیز چگونه حال که نزد تو آمدند و حکم خدا را شنیدند روی برمیگردانند بدان که آنها اهل ایمان نیستند ما طورات را در حالی که در آن هدایت و نور است نازل کردیم تا پیامبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند بر اساس آن برای یهودیان حکم کنند خداشناسان و دانشمندانی که معمور حفظ کتاب خدا بودند و به اقانیت آن گواهی دادند نیز بر اساس آن داوری می کردند پس از مردم نترسید از من پروا داشته باشید و آیات مرا به بهایی اندک نفروشید و بدانید هر کس که بر اساس آیات خدا حکم نکند از کافران و ناسفاسان است و در تورات بر آنان مقرر کردیم که جان در برابر جان چشم در برابر چشم بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و نیز هر زخمی را قساس است. اما اگر کسی از قساس بزرگ وارانه گذاشت کند، کفاره گناهانش خواهد بود. بدانید هر کس بر اساس آیات خدا حکم نکند، از ستمکاران است. و از پی آنها ایسا پسر مریم را فرستادیم در حالی که توراتشان را تایید میکرد و انجیل را که آن هم تایید کننده تورات قبل از خود بود به او دادیم تا راهنمایی و موعظهای باشد برای هر که حرمت خداوند را نگاه میدارد پس باید کسانی که به انجیل معتقدند بر اساس آیاتی که خدا نازل کرده حکم کنند بدانید هرکس بر اساس آیات خدا حکم نکند زشکار و بدنیت است و قرآن را به حق بر تنازل کردیم زیرا هم تعیید کننده کتاب آسمانی قبل از خود است و هم سرآمد همه آنها پس در بین آنها بر اساس آیات خداوند حکم کن و از خواهش های نفسانیشان پیدوی مکن تا مجبور شوی. چیزی از هق را نادیده بگیری ما برای هر کدام از شما شریعت و ای قرار داده ایم و اگر خدا میخواست همه شما را تبدیل به یک امت واحدی می کرد. اما خدا می شما را آنچه تقدیمتان کرده امتحان کند پس در خدمت کردن و نیکی نمودن از یک دیگر پیشی گیری و بدانید که بازگشت همه شما به سوی خداوند بزرگ است و به زودی همه شما را به حقیقت آنچه که مورد اختلافتان بوده است آگاه می کند. و میانشان بر اساس آیات خداوند حکف کن و از خواهش های نفسانی آنان پیروی مکن و از آنها حذر کن تا مبادا تو را نسبت به بعضی از آیاتی که خداوند بر تو نازل کرده منحرف کنند چنانچه از حق روی گردان شدند بدان که خداوند اراده کرده تا آنان را به جرم برخی از گناهانشان عقوبت کنند و بدان که بسیاری از مردم زشتكار و بدنیتند آیا حکم و مقررات زمان جاهلیت را میخواهند برای مردمی که اهل یقین و باورند چه حکمی بهتر از حکم خداست ای اهل ایمان یهودیان و مسیحیان را تكیهگاه خود انتخاب نكنید آنها اولیای یکدیگرند بدانید هرکس آنها را تکیگاه خود قرار دهد از آنهاست و قطعا خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند اما کسان دیگری را می بینی که در قلبهایشان بیماری است و در دوستی و تکیگاه قرار دادن اهل کتاب بر یک دیگر پیشی می گیرند و می گویند می ترسیم برای ما اتفاق بدی بیفتد. امید است که خداوند بزرگ، پیروزی، یا معجزه بیاورد تا این گروه ناسپاس از آنچه در دل می پشیمان شدند اهل ایمان گویند آیا اینان همان کسانی هستند که شدید ترین قسمها را به خدا می خوردند که همواره با شمایند اعمالشان تباه شد و زیانکار شدند ای کسانی که به حقایق ایمان دارید هر کس از شما از دین خود برگردد بر خداون باکی نیست به زودی خدا جماعتی را بیاورد که دوستشان بدارد و آنها نیز خدا را دوست بدارد جماعتی که در برابر اهل ایمان متوازند و در برابر کفار ناسپاس سرسخت و نیرومند کسانی که در راه خدا جهاد کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نه و این فضل و رحمتی الهی است. که به هر کس صلاح بداند میدهد و خداوند گشایش دهنده و آگاه است <تصفيق> انما ولیكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویئتون الزكاة وهم راكعون <تصفيق> بدانید که دوست و تکیگاه شما خدا و پیامبرش و اهل ایمان میباشند همانهایی که نماز به پا می دارند و در حالی که در رکوعند زکات می دهند و هر کس خدا و پیامبرش و اهل ایمان را تکیگاه خود کند بداند که حزب خدا پیروز است ای کسانی که ایمان آورده اید کسانی که دین شما را به تمسخر و بازی می گیرند خواه از اهل کتاب آسمانی قبل از شما باشند و خواه از کفار به سرپرستی نگیرید و حرمت فرمان خدا را حفظ کنید اگر اهل ایمان هستید و نشانه آنها این است که هرگاه بانگ نماز کنید آن را به تمسخر و بازی میگیرند زیرا آنها قومی هستند که در مورد حقایق تعقل نمی کنند بگو ای اهل کتاب آیا ما را سرزنش می‌کنی مگر ما جز این که به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه قبلاً نازل شده است به چیز دیگری ایمان داریم حقیقتا بیشتر شما ز‌هشت‌گدار و بدنیتید؟ بگو آیا می‌خواهید شما را از کسانی که موقعیتشان نزد خدا بدتر از این است آگاه کنم کسانی که خدا نفرینشان کرده و مورد خشم خود قرار داده و از آنها در زندگی میمونها و خوکهایی ساخته که تاغود و بت عبادت می کند. آری موقعیت آنها بدتر است و نسبت به راه درست گمراه تر و حیران ترند و انگامی که نزد شما میآیند آیند ادعا می کنند که ایمان آوردند در حالی که با کفر داخل شدند و با کفر نیز خارج می شوند بدانید که خداوند بزرگ به آنچه پنهان می کنند آگاه تر است و بسیاری از آنان را می که در گناه و تجاوز و حرام مشتاقانه شتاب می کنند. چه بد و زشت است عمل کردشان. چرا دانشمندان مسیحی و یهودی آنها را از سخنان گناهالودشان و نیز از حرام خاری نهی نمی زشت و بد است دستاوردشان و یهودیان گفتند دست خدا بسته است دستای خودشان بسته باد و نفین برانها به خاطر سخنی که گفتند دستان خدا باز و گشاده است و هر گونه به این آیاتی که بر تو نازل بر کفر و تغیان بسیاری از آنها می افزاید. ما نیز به سبب انکار آیات خدا و عمل کرده سوءشان بین آنها تا روز قیامت کینه و دشمنی افکنده بدون بدان که هرگاه آتش جنگ را روشن کردند خداوند آن را خاموش کرد آنها کسانی هستند که برای فساد و تباهی بر روی زمین تلاش می کنند. بدانید خداوند بزرگ مفسدان را دوست ندارد اما اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و حرمت فرمان خداوند را نگاه دارند بدون شک گناهانشان را میپوشانیم و آنها را در بهشتای پر نعمت وارد میکنیم و اگر آنها به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان بر آنها نازل شده عمل کنند بدون تردید رزق و روزی از زمین و آسمان سراپایشان را فرا میگیرد و بهرهمند میشوند البته جمعی از آنها معتدل و میان رو هستند اما بسیاری از آنان عملکردشان زشت و منفور استنبر آنچرا بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ کن که اگر این کار را نکنی به رسالتت عمل نکردی این ابلاغ را شجاعانه به انجام برسان و مطمئن باش خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند زیرا خداوند بزرگ ناسپاسان را به راه موفقیت هدایت نخواهد کرد بگو ای اهل کتاب شما ارزشی ندارید مگر آنکه به تورات و انجیل و آنچه خداوند بر شما نازل کرده عمل کنید و بدان این پیامبر آنچه بر تو نازل کرده این بر کفر و تقیان بسیاری از آنها می پس بر حال قوم ناسپاست هاست مخور من آمن بالله والیوم الاخر وعمل اما کسانی که ایمان آوردند و کسانی از یهودیان و صابئین و مسیحیان که خدا و روز قیامت را باور دارند و عملکردشان خوبی و خدمت است نباید هیچ ترس و یأس و اندوهی به خود راه دهند حقیقتا از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی به سوی آنها فرستادیم. اما هرگاه پیامبری به سراغشان آمد که سخنانش با هواهای نفسانیشان موافق نبود آنها به ناحق ادهی را تقضیب کردند و ادهی را کشتند. آنان پنداشتند مجازاتی در کار نخواهد بود. لذا نسبت به حقایق کوروکر شدند اما باز خداوند توبهشان را پذیرفت دوباره بسیاری از آنها کوروکر شدند تا حقایق را نببینند و بشنوند و بدان خداوند به عمل کردشان بیناست به وادی کفر افتادند آنها که گفتند خداوند همان مسیح پسر مریم است حالان که خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل خدایی را پرستش کنید که هم پروردگار من و هم پروردگار شماست بدانید کسی که به خداوند بزرگ شرک ببرزد خدا بهشت را برو حرام می کند و جایگاهش جهنم است بدانید ستمکاران هیچ یار و یاوری نخواهند داشت به وادی کفر افتادند آنها که گفتند اللا سومین از خدای سگانه است در حالی که هیچ معبودی جز خدای بی نیست و اگر از این اندیشه باطل دست بر ندارند به این کفر ناسپاس عذابی دردناک خواهد رسید چرا به سوی خداوند بزرگ توبه نمی کنند و از او آمرزش نمی طلبند. بدانند که خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است مسیح پسر مرگن کسی نیست جز یک پیامبری که قبل از او پیانبران دیگری بودند و مادرش پاکدامنی راستگوست و آنها هم مثل همه غذا می خوردند بینگر چگونه آیات و ها را برایشان بیان می کنیم و باز بنگرد آنها چگونه از حق روی برمیگردانند ای پیامبر بگو چرا به جای خداوند چیزی را پرستش کنید که هیچ سود و زیانی برایتان ندارد بدانید که خداوند بزرگ شنوا و آگاه است بگو ای اهل کتاب به ناحق در دینتان قلوف و بزرگ نمایی مکنید و از خواهش های نفسانی قومی که از دیرباز گمراه و حیرانند تبعیت مکنید زیرا آنان بسیاری را منحرف کردند و خود نیز گم کرده راه و حیرانند بدانید که ناسپاسان قوم بنی اسرائیل از زبان داوود و عیسی پسر مریم نفرین شدند و این به سبب نافرمانی و تجاوزشان بود زیرا آنها یک دیگر را از بدی و زشتی که گستاخانه انجام میدادند دادند نه نمی کردند و چه منفور و زشت است عمل کرده شن. و بسیاری از آنان را می بینی که کفار را دوست و تکیگاه خود قرار می و چه دستاورد پلیدی را پیشاپیش برای خود میفرستند فرستند دستاوردی که نتیجه آن خشم خدا بر آنهاست و اینان در عذاب الهی جاودانند حالان که اگر به خداوند بزرگ و پیامبر و آنچه که بر او نازل شده ایمان داشتند کفار را دوست و تکیگاه خود قرار نمیدادند. بدانید بسیاری از آنان زشکار و بدنیتند و به درستی درک خواهی کرد چین توزترین و دشمنترین افراد نسبت به اهل ایمان یهود و مشرکان هستند و مهربانترین و دوستترین افراد نسبت به اهل ایمان کسانی هستند که میگویند ما مسیحی هستیم زیرا در میانشان افرادی هستند که عالم و زاهدند و در برابر حق تکبر نمی کنند. هرگاه آیات نازل شده و پیامبر را بشنوند و حقیقت را دریابند میبینی که چشمهایشان پر از عشق می شود و میگویند پروردگاه را به حقیقت ایمان آوردیم پس نام ما را در فهرست گوای دهندگان به حق بنویس. و چرا به خداوند و این دین حقی که به ما رسیده است ایمان نیاوریم و مشتاق نباشیم به این که خداوند ما را در جمع نیکوکاران به شما راورد و به خاطر سخن حقی که گفتند خداوند بزرگ پاداششان را بهشت‌های داد که نهرها در آن جاری است و آنها در آن جاودانند. و این پاداش نیکوکاران است. و اما کسانی که کفر برزیدند و آیات نجات بخش ما را انکار کردند بدون شک آنها اهل جهنمند. ای اهل ایمان چیزهای پاکیزه یا که خداوند بر شما حلال کرده حرام مکنید و از حد معقول هم تجاوز مکنید زیرا خداوند تجاوزگران را دوست ندارد و از نعمتهای پاکیزه و حلالی که خداوند اطایتان کرده بخورید و حرمت فرمان خداوندی را که به او ایمان آورده اید پاس بدارید خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و غیر نمی نمی‌کند بلکه به شکستن پیمان‌هایی که منعقد بسته اید موآخذ خواهد کرد پس کفاره چنین گناهی اطعام ده مسکین است از غذای معمولی که به خانواده خود می‌دهید و یا اوچاندن لباس به آنها و یا آزاد کردن یک بنده و اگر کسی بنده ای نیافت سه روز روزه بگیرد این کفاره قسم است هرگاه بسم کردی پس مراقب سوگندهایتان باشید و خداوند اینچونین آیاتش را بیان می کند امید آنکه به مقام شاکران نائل شوید ای اهل ایمان خمر و قمار و بوتان و تیرک های و شرط بندی پرید و ناپاک و از کارهای شیطان است از شیطان دوری کنید امید آنکه رستگار شوید زیرا شیطان اراده کرده است به واسطه خمر و قمار بین شما کینه و دشمنی بیاندازد و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد آیا از این کارهای زشت دست بر می دارید و از خداوند بزرگ و پیامبرش اطاعت کنید و از نافرمانی بر باشید و چنانچه از حکم خدا سرپیچی کنید بدانید که مسئولیت پیامبر ما جز یک ابلاغ روشن چیز دیگری نیست بر کسانی که اهل ایمانند و عمل کردی شایسته دارند گناهی نیست اگر در گذشته می خورده باشند به شرط آنکه پرهیزکار شوند و ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند باز پرهیزکار شوند و ایمان آورند و باز پرهیزکار شوند و اعمال نیک انجام دهند و بدانند که خداوند نیکوکاران را دوست دارد. ای اهل ایمان، خداوند حتی شما را به سیدی که با دست و یا با نیزتان میگیرید امتحان می کند تا مشخص کند چه کسی از قدرت الهی در نهان می هراسند. پس هرکس بعد از این از حد خیش تجاوز کند عذاب دردناکی برای او مهیاست. ای اهل ایمان هیچ سیدی را در حال احرام نکشید و هرکس از شما عمدن مرتکب کشتن سیدی شود جزای او قربانی کردن معادل آن سید است در حالی که باید دو شاهد عادل گواهی دهند که قربانی معادل به کعبه رسیده است و یا کفاری آن اطعام درماندگان و یا روزه گرفتن معادل آن است تا عقوبت کار خیش را بچشد خداوند از آن که در گذشته مرتقب شده اید گذشت اما کسی که به گناهان گذشته روآورد بدون تردید خداوند از او انتقام خواهد گرفت و بدانید که خداوند بزرگ قدرتمند و انتقام گیرنده است سید دریایی و تا آن بر شما و کاروانیان حلال است اما سید خشکی مادامی که در احرام هستید بر شما حرام است و حرمت فرمان خدا را که روزی نزد او جمع خواهید شد نگاه دارید خداوند کعبه بیت الحرام را مایه حیات و بودن مردم قرار داده است و نیز ماه حرام و قربانی نشاندار و بینشان را و این چون این احکام به خاطر آن است که بفهمید خداوند بزرگ آن چرا که در آسمان و زمین است می داند و او به هر چیزی آگاه است بدانید که خداوند هم مجازاتش شدید است و هم آمرزنده و بسیار باگذشت است و بدانید که پیامبر وظیفه جز ابلاغ کلام خدا ندارد و خداوند بزرگ به آنچه آشکار میکنید و آنچه پنهان میدارید آگاه است. بگو ای پیامبر پلید با پاکیزه یکسان نیست هرچند چند که زیادی تعداد ناپاکان اعجاب تو را برانگیزد پس ای اندیشمندان، حرمت خدا را نگه دارید. امید آنکه رستگار شوید ای اهل ایمان از چیزهایی سوال نکنید که اگر حقیقت آنها بر شما آشکار شود ناراحتتان کند و اگر سوال در این گونه موارد را به وقت نزول آیات قرآن بسپارید مسلما حقیقتش بر شما آشکار خواهد شد خدا از این نکته بگذرد و خداوند آمرزنده و بردبار است جمعی از پیشینیان شما از آن موارد سوال کردند سپس به انکار و مخالفت با آن برخاستند. خداوند در مورد بهیره و سائبه و وسیله و هام حکمی نکرده است اما کسانی که کافرند بر خداوند تهمت دروغ می‌بندند، زیرا بسیاری از آنان نسبت به حقایق تعقل نمی کنند. و انگامی که به آنها گفته شود به سوی پیامبر و آنچه خداوند نازل کرده بیایید، میگویند همان چیزهایی را که نزد پدرانمان یافتیم برای ما کافی است. حتی اگر پدرانشان نادان بودند و چیزی نمیدانستند و هدایت هم نشده بودند باز از آنها پیروی میکردند ای اهل ایمان، پس شما به خود بپردازید، زیرا تا وقتی که، در راه هدایتید گمراهان به شما ضرری نمی رسانند. بازگشت همه شما به سوی خداست و به زودی خداوند شما را نسبت به عمل کردتان آگاه می سازد ای اهل ایمان چون مرگتان فرارست هنگام وسیعت دو نفر شاهد عادل از بین خودتان گواه بگیرید و اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ فرارسید دو نفر شاهد از غیر خودتان انتخاب کنید و اگر به آنها شک کردید تا بعد از نماز آنها را نگاه دارید تا به خداوند قسم خورند که ما حاضر نیستیم حقیقت را به چیزی بفروشیم هرچند به نفع نزدیکان باشد و شهادت الهی را کتمان نمی که اگر جزین باشد بدعا از گناه خواهیم بود و هرگاه معلوم شود که آن دو شاهد خیانت ورزیدند دو شاهد بهتر جای آنها را بگیرند و آن دو به خدا قسم خورند که شهادت ما از آن دو نفر قبلی درستتر است و ما از حق تجاوز نکنیم و هرگاه چنین کنیم در زمره ستمکاران باشیم این شیوه نزدیک ترین نوع گواهی به حق است و بترسند از اینکه سوگند دیگران جایگزین سوگند آنها شود و رسوا گردند حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و با دقت گوش کنید زیرا خداوند قوم زشکار بدنیت را هدایت نمی کند روزی که خدا پیامبران را جمع کند می پرسد در مورد دعوت شما چه پاسخی به شما داده شد؟ میگویند ما چیزی نمی‌دانیم تو خود آگاه هر غیب و هستیم و انگامی که خدا به عیسی پسر مریم گفت یادار نعمتی را که به تو و مادرت عطا کردم آنگاه که تو را به واسطه روح القدس یاری کردم تا تو هم در گهواره و هم در بزرگسالی با مردم سخن بگویی و کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم و آن زمان که از گل مجسمهی به شکل پرنده ساختی و به ازن من آن دمیدی و آن تبدیل به پرنده شد و باز به ازن من کور مادرزاد و بیمار برست گرفته را شفا دادی و مردگان را به ازن من زندگی بخشیدی و نیز آن هنگام که با این معجزات روشن نزد بنی اسرائیل آمدی و من تو را از آسیب آنان حفظ کردم اما ناسپاسان آنها گفتند که این فقط یک جادو و چشم بندی آشکار است و که به هباریون وحی کردم که به من و پیام برم ایمان بیاورید گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما در برابر حق تسلیم شده و به انگامی که هباریون به عیسی پسر مریم گفتند آیا پروردگار تو میتواند تواند آسمانی بر ما نازل کند؟ ایسا گفت حرمت خدا را نگه دارید اگر اهل ایمانید گفتند ما میخواهیم از آن بخوریم و قلبهایمان من آرام گیرد و نیز بدانیم که تو به ما راست ای و گواهان این معجزه باشیم و ایسا پسر مریم گفت خدایا پروردگار بر ما مائده از آسمان نازل کن تا هم برای اولین ما و هم برای آخرین ما ایدی و نشانه از تو باشد و به ما روزی عطا کن زیرا که تو بهترین روزی دهندگانی و خدا گفت بر شما نازل می کنم اما اگر بعد از این کسی از شما کفر و ناسپاسی ببرزد چنان او را عذاب کنم که احدی از جهانیان را عذاب نکرده باشم و هنگامی که خدا به عیسی پسر مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که غیر از خدا من و مادرم را به خدایی بگیرید و عیسی گفت تو پاک و بی نقصی. سزاوار من نیست چیزی را بگویم که آن نیستم اگر چون این چیزی گفته باشم، بطعاً تو با آن آگاهی تو از آن چه در درون من است، اطلاع داری. اما من از ذات تو بیخبرم. تویی که دانای همه نادیده‌هایی، من چیزی به آنها نگفتم، مگر آنچرا که تو امر کرده ای. اینکه خداوند را عبادت کنید. همان خدایی که پروردگار من و شماست. و مادام که در میان آنها بودم مراقب اعمال و اعتقادشان بودم و از وقتی جان مرا انتقال داده ای، تو خود مراقب آنها بوده ای. و تو بر هر چیز گواهی اگر بخواهی عذابشان کنی بنده های تو هند و اگر بخواهی آنها را بیامرزی همانا تو قدرتمند و حکیمی و خدا گفت امروز روزی است که راکس از راستی خود بهره میبرند زیرا بهشت هایی که نهرها در آن جاری است برای آنهاست و آنان جاودانه در آنجا خواهند ما خداوند از آنان راضی است و آنها نیز از خدا راضی‌اند و این پیروزی بزرگ است. فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست از آن خداست و او بر هر کاری تواناست لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رابز گفت خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی اللہ علیه و علیه و سلم.